موسا علیه السلام قارون را نصیحت کرد که احسن کما احسنن لاه و الگ نشنید و عاقبتش شنیدی. آن کس که به دینار و درم خیر نیندوخت، سر آقبتن در سر دینار و درم کرد. خواهی که ممتع شوی از دنیای و با خلق کرم کن که خدا با تو کرم کرد عرب گوید جد ولا تمنون فا این الفائدت علیکه آئدتو. یعنی ببخش و منت منه که نفع آن به تو باز میگردد. درخت کرم هر کجا بیخ کرد گذشت از فلک شاخ و بالای او گر اون میدواری که از او برخوری، به منت منه بر برپای او. شکر خدای کن که موفق شدی به خیر، زن آم و فضل خود نمو ات تل گذاشتت. منت منه که خدمت سلطان همی کنی، منت شناس از او که به خدمت بداشته